بازنگری در تاریخ قلم رو میانی. ببینید از کیومرس تا جمشید پونزه هزار ساله خب اینا از کجا میدیشون؟ اینا رو ما باید من دارم اینا رو این نوار تاریخی رو یه شمای کلیش رو میگم بله بعد من باید سنت بدم دیگه دقیقا بله وقتی چند تا نقطه ثابت رو من تعیین کردم بعد سر و تش مشخص شد این سالا خودش در مید خب کیومرس تا جمشید پونزه هزار ساله پونزه هزار ساله تحموره است که آرامگاهش رو رویت این بابا بزرگ یا جدش توهم بوده و خواهرش موجودیت داشته به منطقی نیست بله، پس با این حساب شما دوره آغاز یعنی کیومه رو آخرین دوره یخبندان میدونیم؟ این سرماه های این درقای ترکش های بعد از پایان آخرین یخبندان هست یعنی از یخبندان جدا شده. واقعا جالبه که حالا این حرکت جمشید و آدمیان که در دوران اون زیاد شده بودن گفته میشه بر اثر سرماست و الان دیدیم که ایشون سند خوندن که سرمای در کار نبوده تا آخرین سومی گسترش هم اتفاق افتاده و اصولا این رو باید بدونیم واقعا متون کهن به ویژه اوستا اونقدر هم بر ترجمه هایی که الان برشون شده یعنی نمیشه بهشون اعتماد کرد به نام ایزد یکتا با عرض سلام و ادب و احترام خدمت هممیهنان گرامی همراهان صدای امید برنامه ایران وچ با قسمت 14 این برنامه در خدمت شما هستیم همطور که در جریان هستید و پیگیری میکنید این برنامه رو ما 11 قسمت مقدماتی داشتیم در نقد تاریخی که در ایران نوشته شده در 100 سال اخیر و به خصوص خمیرمایه اصلی و همچنین مبنای اصلی این تاریخ یعنی مهاجرت آریایی ها و تا حدودی تا اونجایی که وسیله برنامه اجازه میداد و به طور خلاصه وار نقدهایی که وارد بود رو خدمت شنوندگان عزیز ارز کردیم در دو برنامه گذشته یعنی قسمت 12 و 13 سعی کردیم وارد بحث نوار تاریخی بشیم ولی باز هم یک سری مسائل باقی مونده بود که در دو برنامه گذشته کارشناسان عزیز به اون پرداختن در قسمت 14 وارد رسم این نوار تاریخی خواهیم شد که ببینیم ما نوار تاریخی کشورمون رو در چه زمانی و در چه مکانی میتونیم رسم بکنیم این ایران یا ایران یا خوانیره چی هست کجاست محدودی تقریبی جغرافیاییش نه محدودی دقیقی که الان مرزها توسط استعمار و در واقع برانکلوک رسم شده به صورت تقریبی این ایران ایران یا همون خوانیره کجاست یکی دومی که این تاریخ ایران تاریخی که ما میخوایم در موردش صحبت بکنیم و نظام پادشاهی و همچنین صناعت و فلاحت و شهرنشینی و و حتی آغاز سیاست در این آب و خاک رو مورد بررسی قرار بدیم. توی این برنامه میخوایم از جنابقا ایران شروع کنیم ایران ما قبلا برنامه داشتیم تحت عنوان برابری که شروع کردیم ما از دوره تکامل تا به دوره پیش آ مرسی چون تقریبا دو نفری توق رسیده بودیم که تاریخ ایران رو ما از کیومرس باید شروع بکنیم حالا کاشناسان دیگه شاید یه نظری داشته باشن در... چه در مورد زمان و چه در مورد مکان کاری نداریم در مورد بحث خواهیم کرد چرا موقع اینان میر در مورد رسم نوار تاریخی ما چه واقعیت هایی رو داریم و چه مسائل پنهان و مسائل قامز و پوشیده ایری داریم که باید اونها رو از طریق این ها ازش رمز بکنیم و راز بکنیم خواهش میکنم درود بر شما و شنوندگان گرامی برنامه ما تو نشست های پیش دو نشست پیش تأکید کردیم که این نخستین باره که این نوع نگاه داره به تدوین تاریخ این قلم رو میشه یکی این مرز ها رو ما خیلی به رسمیت نمیشناسیم نه تنها این مرز های استعمالی رو بلکه حتی مرزهایی که تو ذهن ها وجود داره مثلا گمان میشه که یک کشوری به نام ایران بوده در همسایگیش یک کشوری به نام هیتی هم بوده حالا با. من خیلی خوشحالم که تو برنامه ها گهگداری میبینم آقای کریمی خیلی رو مبحث هیتی ها تکه میکنن هیتی ها یکی از اثر گذارترین جمعیت, ها. جمعیت های بودن که تو قلم روی میانی پدید اومدن و اثر گذاشتن و بعد به پایان تاریخ خودشون رسیدن اما دستاورداشون تو این قلم رو موند یعنی به پسینیان منتقل شد حالا بعد میرسیم به اون مباعث هیتی ما نمیتونیم هیتی رو با کسانی که تو کیمشت زندگی میکردن جدا بدونیم سرزمین های حدود خاوری زاگروس کیمشت نامیده میشه با مختصات خودش و اینا که از همین نواهی بوده که مثبه فلز زمیس از آریسمان به مصر صادر می شده. یعنی جای بسیار مهمی. اینا ما نمی تونیم رو بگیم نادیده بگیم و بگیم مثلا هیچی از اینا خبر نداشتن، اینا از اونا خبر نداشتن. بنابراین اون مرزهای ذهنی رو هم ما نمی تونیم به رسمیت بشناسیم. بنابراین گفتیم قلم روی میانی تا تمام مواردش رو با هم بحث کنیم ما تو این نوار تاریخی در رسمش به ماد کوهن می رسیم، به نیونویها یا آنوبانی سر دودمالش می رسیم. به دیاکو میرسیم به کوروش میرسیم اینا همه توی این نوار جا دارن اینی که ما داریم نام های کیومرس و تحمولس و جمشید و کیخوس رو بهمن و همای رو بررسی میکنیم معنیش این نیست که ما فقط داریم یک شاهنامه گذاشتیم جلومون و میخواییم قصه بگیم اون بری شنوندگان درسته زیباست درسته خیلی هماسیه اما کسال آور میشه چون بارها اینا رو شنیدن بله. ما دنبال اون تاریخ روایی و استوره هامون با تاریخ مستند روز هستیم بر پایه دانش های روز بتونیم اون نوار رو رس کنیم ما میخواییم بنایی رو بسازیم روی پایی این پایه اگه جایی ستوناش نادرست باشه بنافورو خورو میرزه. میرزه. خورو ما باید ستون ها رو هم تعدادشو هم جایگاه ستون ها رو هم از لحاظ زمانی هم از لحاظ مکانی پیدا کنیم با اسناد. سرش بحث کنیم چنانچه اختلافی است اسناد اضافه تایی رو ارائه بدیم تا یک چیز حدودی به دست بیاریم ما روی این نوار من اون نشست ارز کردم چون روی کیومرس احتمالا توافقی نداریم بله ما چه اصراریه ما میپردازیم نقاطی که روی این نوار تاریخیمون که استوره ها اونا رو ذکر کردم و ای ها بعدا من نشون میدم که یه اسطوره ها تو کل قلم رو وجود دارم وجود دارم به یکسانم یعنی کس که میخواد تو تاریخ ایران کار کنه بگه من هم ایران شناسی کار کنم من خیلی رک بگم اگه ایرانی رو نشناسه، یک اگر استرا های هندی رو مطالعه نکرده باشه چنان چه استرا های اژ رو نخونه من و نشناسه بگه اونا یونین مال ما نیستن به ما چه دشمن ما بودن اینا ها. از این حرف باید کنار تو دانش چون همه اصلا پایاساسی هم نداره اگر اسناد میان رودانی رو نشناسه و مطالعه نکرده باشه اگر اسناد مصری رو مطالعه نکرده باشه همین حداقل دست کم همین چند مرید رو که عرض کردم اصلا بهتره ببوسه بذاره کنار چون من. به هیچ جا نمیرسه حالا من تو نشاسته اند کم کم میگیم دیگه مثلا آیه کریمی یه اسطوره رو میگن من نمونه ایجیشو میگم ها دکتر نمونه هندیشو میگه آقای فیروزی تو اسناد میان رو دانی مصری نمونه هاشو میگن برد. میبینیم که این همه مشابه نا آقای نامر به اصورهای اجهی شما اشاره کرده چون اکثر شنوندگان ما خب ممکنه بینشون افراد متعالی و پجوهشگر هم باشه افراد عامی هم باشن در مورد این اصورهای اجهی اصلا منطقه اجه منظورتین چی هست؟ اجه دریایی بله دریای اجه که مشخص در قسمت شمال شرق دریای مدیترانه درست. که از طریق دریای مرمره به دریای سیاه وصل میشه. بس. امروز اگه بخوایم همین امروز بگیم کرانه های شرقش میشن کشور ترکیه، کرانه‌های غربیشان میشن کشور یونان. بله. اما تاریخ اینجا چیز دیگه ای رو میگه. اژه جنوبش جزیره بسیار بسیار مهم و تاثیرگذار کرت قرار میگیره. چون کرت خیلی مسئله مهمیه تو قلم روی میانی اون دریای اژه پر جزیره است. و در تاریخ بعد ما بحث میکنیم که چرا و چطوری کرانه و ساحه کرانه خاوری یعنی ساحل شرقی اژه نامش آسیاست کرانه باختری یا همون ساحل غربی اژه نامش اروپا است حالا چرا میگیم کل آسیا به این نقطه گفته میشه بله. حالا یک کم پشت سرش تا حدود میانه های آسیای خورد کل اروپا هم به همون ساحل گفته میشه با یک کم پشت سرش تا حدود شاید شمال آرگست تا نزدیک سر، سرزمین ایلوری ها به دریای آدریاتیک نمیرسه حالا این که چرا امروز به ژاپن هم میگن آسیا بله اصلا معنیش چیه بله. چرا ور تا انگلستان رو هم میگن اروپا و اطلاق شده به این تا قاره یک بحث تاریخیه که اصلا جز مباحثمونه ما بلده. ارز میکنیم بله. اونجا جاییه که ما ایرانی ها در لفظ خودمون میدونیم که ما نخستین کشور جهانی بر سرزمین های اطرافمون نام میذاریم باید. یه خانومی از دانشگاه کراکو آمده بودن محسید خدا دکترای زبان فارسیشون رو می‌گرفتن. حالا بد نیست نامشونه بگیم احتمال اینشون دیگه اون جالا تو کراکو استاد زبان فارسی بود باشن خانم پاولینا نیخشیال لهستانی بودن. اومده بودن اینجا ما آشنا شدیم با و در باری همین مباحث تاریخ و اینا یک روز به من گفتن که خیلی هم فارسیشون خوب بود. داشتن دکتر زبان فارسی می‌گرفتند. یه روز به من گفتن ما پولسکاییم در انگلیسی و لاتین هم به ما میگن پولند. شما چرا به ما میگین لهستان؟ اصلا از کجا اومدین؟ کجا اون موقعی که شما هنوز خودتون نامی نذاشته بودین ما, رو رو ما این لها رو شما گذاشته بودیم. مصر هر کی هر چی به خودش میگفت ما بهشون ایشون مصر. سرزمین های اطراف رو چون کهان نام طبیعی نام گذاری کنیم اون یونان هم یون یک باجه ایرانی کهانه از ایونیه از ایونیه هم از همین یون گرفته میشه حالا در اون داستان خودش کلن باید بپردازیم دیگه ما به اونها میگیم یونان اونا هلنیان، هلاسن در لاتین هم میگن گریس یا گیریک و بعد اینی که من میگم اصوره های اجهی منطقه شو دارم درست میگم اسطوره مال دو تا کرانه این دریاست وقتی ما بیم اسطوره ها بپردازیم شما میبینین که دقیقاً داره مختصات فلات مرکزی ایران رو داره میگه با همین مختصات اسطوره شون هم... وقتی به اولمپنشینا برسیم وقتی به تایتان ها برسیم وقتی به نریید ها برسیم خدای خدایانشون شون زئوس پوزیدون تریتون شما میبینین اینا همه ما به ایرانی که داره هیچی، چیز تعریفای ایرانی داره فرا من شخص خودم در بررسی تاریخ اجر و جایی جدا از ایران نمیدونم. دکتر شعبین وکیلی حالا با نگاه خاص خودشون میگن که آقا یونان یکی از شطرپ های شمال غربی ایران بوده که گاهی شورش میکردن و قوای شاهنشایی مکرر برای تنبیهشون ازام می میشدن. در همین حد. کلان هم. در همین حد. قصد پایناوردنشون نیست. یکی از... مناطق قلم رو میانین بسیار وابسته به فرهنگ ایران اصلا شما تاریخ خوانیشون رو نگاه کنید. بابا ای که میگن که ما با کشور یونان می جنگیدیم به خدا دروغه به پیر به پیغمبر دروغه اصلا در حد و اندازه نبودن بیچاره ها من. هرودود تو رساله هاش میگه ما آسیاییم چیز افلاتون تو رساله میگه ما آسیاییم خود من. هرودود آسی... ده... ایرانیه احلا حالیکارناسه چطور شد او... خانومه ارتمیا فرمانده نیروی دریایی ها رو ایرانی می‌دونین همون شهر بغلیش مالاهرودوت رو اون دیگه حالا اون دیگه نیست دیگه تو دوران ام. پریکلس خب می‌رفته آتون میامده خب میرفته خب به شوش هم میامده خود افلاتون دیگران همشون به شوش رفته آمد داشتن خیلی طبیعی بوده اصلا اردشیر دوم سوم اینا کلی پیمان پیمان آنتالکیداس چی چی میونه اینا می‌بستن که اونها رو با هم صلح بدم مثلا پلوپونز رو با اسپارت اسپارت رو نه آقا نکن بشین سرجات نه جنگ خجالت بکش دیگه چند بار بهت بگم یعنی کاملا دید اینطوری بوده دقیقاً خشوش هم داشته می‌رفت آتون حالا یه جای تنگه‌ای بوده یه دو گفتم مثلا حالا بذار شاید بلکه بتونیم جلوی اینا رو بگیریم بنده خدا اصلا شما ما الان صد هزار آدم هم دست خالی به شما میدم شما از یه مسیری میفرستین برید بریدین به روستای روستایی ها گیریم 100 تا 200 تا۶دادم تا بخوان جلو شمارم بگیرن با همون تیر و برنو تفنگ و شما که دارن شما فکر میکنه وقتی برسیم به مقصد از 100 هزار نفر بپرسین اصلا یادشون میاد همچی روستایی سر را بود اصلا یه روست زیر پای 100 300 تا آدم اصلا دیده نمیشه اصلا کسی قول بهتون میدن صدزار تا فقط اون 50 تا 40 تا که از بغل رورد شد میدونه همچی روستای سر بوده و چهار تا چوبم دستشون بوده بلکه مخالفت هم کردن اصلا عددی حساب نمی بله متشککرم برای شروع برنامه خیلی خوب بود اتفان شناگانی گرامی کتاب جنگ های پلوپنزی هم چاپ شده ات ترجمه هم شده. دوستان میتونم برم ببینن که چقدر میانجیگری پادشاهان ایرانی رو ما توی این جنگ ها میبینیم و خود سقرات هم اصلا کسی بودی که بعد از از جنگ های پلوپنزی اومده بود و خاطراتی هم از اون توی رسال های افلاتون ما میبییم. در مین فرمایشات شناباقا ایرانه مخدمت کنم. خب شاید خیلی ها این رو به معنای شیفتگی مثلا ایران و باستان بدونن ولی من میخوام یه مسئله رو بگم که دوستان یکم حضم بکنن این مسئله رو خیلی ساده است یه معادله کاملا ساده دو تا چهار تاست تا شما مثلا گزاره های تاریخی رو باید ما سه تا بردار داریم تو گزاره های تاریخی همون که شما تو ریاضیت میرونی یه طول X هست Y هستید Z هست یه بردار از بردار زمان هست، یه بردار از بردار مکان هست، یه بردار از بردار منطقه. یعنی مثلاً اگه وقتی یه گزاره تاریخی رو میخواین مطرح بکنین، اون گزاره هم باید زمان داشته باشه، هم مکان، هم منطق دوش باشه. من یه گزاره تاریخی رو به طور مثال ارزش میکنم خودم از تو ذهنشون این مسئله بیاد. مثلا من میخوام بگم که مثلا سال 500 پیش از میلاد، نیروی هوایی حکامنشی. هواپیماهای B2 و B52 به نیروی هوایی مثلا یونان حمله کرد و اونها رو تار کرد. خب این گفته من یه گزاره تاریخیه. زمان هم داره، مکان هم داره، ولی منطقه تاریخی نداره. چرا؟ چون اون موقع هواپیمایی نبوده. لذا ببینید وقتی که شما میخواید یک گزاره تاریخ رو میشنوید باید تو ذهن خودتونم حلاجی بکنید. اون موقع امپراتوری هخامنشی با یه امپراتوری بسیار بزرگ میلیون ها کیلومتر مربع وسعت با پنجاه تا ساتراپی بعد اون سمت مثلا یک دولت شهر کوچیکی که مثل اسپارت مثلا بیاد با اون اصلا معنی نداره انگار مثلا مثل این میمونه که الان کشوری مثل بحرین بیاد مثلا با کشوری مثل ایالات متحده وارد جنگ بشه باید پیروز هم بشه. این اصلا هیچ عقل سلیمی این رو نمیپذیره. این توضیح رو خدمت شنوندگان عزیز ارز کردم که وقتی که با این لحن حالت ملی گرایانه در واقع میشنم خیلی در واقع دوچار تعجب نشن و این مسائل تاریخی رو با منطق تاریخی خودشون هم بسنجن. من اصخایه میکنم بابت این توضیح چون لازم بود و برای... در واقع حلاجی منطقی و عقلانی تاریخ این توضیح برای شنوندگانی گرامی لازم میدم که از کنم آقای فیروزی گرامی در برنامه گذشته شما هم فرمایشات شما رو داشتیم برخی از دوستان معتقد بودند که ما دوره های که داریم یه دوره هست و بعدها نماد شده برای تاریخ استورهی ایرانی ها تاریخ استوره باید شما فرمودید که نه اصلا اینا تاریخ نه این اشخاص اشخاصن از داریم. ما شخصی به اسم کیومرث داریم سیامک داریم تهمورث داریم جمشید داریم فریدون داریم همین هستن شخصیتان و حتی میشه با کاوش های تاریخی و باستانشناسی قبر اینها هم حتی پیدا کرد محدوده پادشاهی اینا رو حتی کاخ اینها رو میشه پیدا کرد ضمن توضیحی که در این مورد میدید نظر خودتون رو در مورد همین رسم نوار تاریخی که ما شروع کردیم تا از این قسمت نوار تاریخی خب شما با بقیه کاشناسانی برامه تا حدودی یک اختلاف نظر و طبیعی هم هستش و نظرت خودتون رو مطرح بکنی تا اینکه به یک نتیجه مشترک برسیم درود به علاقمندان بله. اومندان خدمتون که بله من نظرم همچنان این هستش که این نام ها متعلق به شخصیت ها بودن بله. دو تا سه تا دلیل دارم براش یکی این که اول ما ببینیم در معنای اصور شناسی در سرزمین های دیگه این اصور شناسی چیست یعنی شما به ترجمه فارسی مختلف اساتیر بین ملل مختلف رو بخرید خیلی کتاب هست اساتیر های مصر همه جا میبینید داستان خدایان هست یعنی شما کتاب اصور مصر رو که باز کنید این هشت خدا و ده خدا و داستان های ها با هم و کی کیک و چیکار کرد و اون خدا با بنده ها شگار کرد این داستان رو میبینید به اضافه داستان اجتماعی که اینها ها جلوه تاریخی نداشتند، یعنی مثلا فرعون حقیقی فلان دوره از فلان سلسله درگیری داستان و میشه اینها میشن اساطیر مصر یونان هم همینطور دیگه شما داستان خدایان رو کاملا میبینید چین به همین صورت هندوستان خدایانش اساطیرش هستن در ایران چون تابویه یعنی یک سری اصحاراتی شد از روی تعصبات دینی چه به روزگار ساسانی چه پس از ساسانی که الا بلا ایرانی ها همیشه از زمان ازل تا حال یک تا پرست بوده تا نه همچین چیزی نیست بهی چون و همشه این چیز نیست شما نام های خدایان ایرانی رو بینید حتی چهره اینها رو میبینید باز ها... میخوام آی فیروزی ببخشید آی دکتر مویب آی دکتر این یک معضل جدیه که آی فیروزی دارن میگن من ما تو هر نشستی میشنیم تو هر مقاله میبینیم تو هر جایی میبینیم نوشتن ببخشید آی فیروزی میخوام کلامت یک طوری با یک ذوق این جوونا ها, ها میگن آقا ما از همون دیویس هزار سال پیش یک تا پرست بودیم اولین یک تا پرست ما که سندی ناییدیم خدا وکیلی یعنی جدا از اینی که اصلا در مثلا در مزایای یک تا پرستی خب حالا صحبت بکنن آیون علما و اینا ما هم قبول داریم بحثی نیست اما حالا مزیتی هم بوده ایرانی چه مزیتی؟ تو تاریخ ما بلدشت. که ندیدیم به خداهای فیروزی کاملا دارن درست میان من شرمنده ما فیروزی درستیم در دل ما هم بود بله یعنی ام... بله ببینید یک فلسفه ای از یکی از مکاتب ایران با مثل این از زرتشتی اونم نسخه اصلیش آموزه های یک تا فرسی دوشاست یعنی یگانه کی در در واقع آفریدگار دوگانگی در آفرینش اینو شما میبینید که آفریدگار یکی است ولی خب شما جلوی منفی هم دارید ولی مکاتبی دیگه شما خدایان رو به واضح تا داری، آشکارا دارید خدایانا بعد به خاطر این تابو این دار... میگم حالا چون می‌خویم این هم چیز هستش جلوه های چند خدایی در اسطوره‌های ایران رو میتونید یکم توضیح توضیح بیشتر بدیم نابود شدن ولی ما این این باز کرده بازگردش و جلوهش رو در گشتا می‌بینید یشتی است درسته گشتا الان همه اون ایزدان شدن اولا خدایان شدن ایزد و پاینتر از اهورامزدا تقریبا هستند ولی هرکدونه از یک داستانی دارن که خیلی از داستانات نابود شده ولی ما اون تا اون خداستان های خدایان کهن رو میبینیم چون ذات بشر هست بشر قدیم طبیعتو نمیشناخته میترسیده میخواست توضیح کنه و اینا رو رام کنی خطراد طبیعتو واسه هرکدونه یه خدا میساخت این انسان ایرانی که اجداش که فرنگ داشتن که تافه جو بافه نبودن که ذهنیت بشری یکسان بوده هر هرکدونه خدایشون یه سیما داره ولی خدایان داشتن این داستان خدایان در یشتها تقلید یافته به صورت ایزدان خیلی مبهم ولی بعضی حرکاتی میکنن یه سرگرمی دارن ولی ما نمیدونیم نمی‌دونیم ایزده بهرام از کجا به دنیا اومده به کجا رفته ما اینا دقیق نمی‌دونیم مثل عینن خدایان یونانی ولی خب داستان شد ولی حالا چون ما اونا رو دست داریم به خاطر این تعصب مذهبی یه مثلاً تو مانیگری باز این داستان‌های خدایان رو ببینید. بله اونجا بله. هستش اونجا دیگه اهورامزدا شده یک انسان نخستین تا جوابش جا شده ولی با شما داستان خدایان دارید درگیر این خدایا اونجا این رو دارید این داستان داستانا برای می رفتن و ما گفتیم خب بالا رفرف ذهن رف ذهن بشر میگم ذاتش یکسانه این داستان ها رو باید بسازه شاهان و پهلوانان کهن کش نشده ما اونمن جای این رو پر کردن حالا دیگه شما خدای رشکبری و حسود اینا نداری شما کابوسو دارید شما خدای مغرور نداری جمشیرو دارید شما خدای بخشنده بافندگی و نگارش و اینا دیگه ندارید شما تهمورس رو دارید اون داستان خدایان عمر و پادشاهان و پهلوانان کوهن ما نشست داستان شاه برگ گرفت اینا شدن استوره های ما اینا اسطوره شده های ما هستند ولی های ما اینا نیستن داستان خدایان ما بوده. از این نکته که بگذرم مسئله بعدی این هستش که حالا باید چه کار کرد؟ ما الان داستان خدایا نداریم با این شخصیت در آشفته باید چه کار کرد؟ جواب ساده است همون کاری که چینیا کردن، همون کاری که مصری‌ها کردن. دیگه ما سخت‌تر از مصری‌ها کارمون نیست. مصری‌ها شما فکر می‌کنید راجع به این هرم بزرگ، اینا چند خط نوشته داشتن؟ همون چیزی بود که رودود نوشته بود تو دو کتاب دومش. دو خط سه خط مثلا دیودور نوشته بود و پلیسور نوشته بود و این چند نفر یونانی دیگه. هیچ چیزی دیگه نداشتن. بله. اینا رفتن کاویدن کشیدن بیرون اسامی رو به اینن مثل مصریش در رو بردن چار هزار سال پیش یعنی دیگه ما از اینهای که کم کمترک نیستیم که تازه با امکاناتش ها در 67 باستان شناسی 67 سال پیش این نه اینترنت بود نه امکان اسکام بود باستان شناس امروزی ایران زیر باد کولره باستان شناس مصر شناس وسط کویر بود یعنی ما الان تو ناز نعمت باستان شناس وجود داره میتونه اینا مثل همونا سختی بکشه و اینها رو بررسی کنه ما دیگه اصر عبوریهان بیرونیست تا بالا اینا دوره هستن بله. نه اینا قابل بررسی هستن من این حتی حساب کتاب همه یکی دو تا پادشاه پیشدادی رو میخوام بحث کنم که آیا این شخصت پیشتدی که یعنی قابل زماندهی هستن اگر اصلا این سالها به چه صورت بدست میان خب اصلا قبل از اینکه که واردون بحث بشیم یه ابحام دیگه باقی میمونه شما چه دلیلی دارید که در دوری ساسانی ها در دوری ساسانیان، این الهه ها این ایزد ها یا به قول شما این چند خدای مفاهیم چند خدایی این منابع چند خدایی نابود شد و در واقع یواش یواش این تاریخ واقعی تبدیل به اسطوره شد چه دلیلی وجود چه, چه چه منبعی چه سندی در دوران ساسانی داستان خدایان پاک نشد ما به دو حالت این داستان ها رو اداس داریم یک ضربه ای بود که از اسکندر ایجاد شد اسکندر به نژ روشن اسناد اومد نوشته های ایرانی در دو جو نابود کرد که کهشم انتقال داد اون چیزی دوست داشت یک گیشمن اینم قبول نداره خنددار این هست که یک غربی مثلا گیشمن اینم قبول نداره ایرانیش نشدن اسکندر افسانه بود سوزونده نه یک زربه اونجا اسکندر زده بعد اون چیزی که به دست ساسانی رسیده هم تازه زده دست ما نیست در دوران ساسانی عرشیری بابکان دوتا آدم اطرافش بود تنسر و ماهان تنسر وزیرش بود که اشتباه میگه موبدش بود ماهان موبدش بود این اندیشه ای این دوتن بزفر با بابکان هزو دوره های غیر مزده یسنای تاریخ ایران بود دوره ها و حق... یعنی شخصیت ها رو از میکنه از جمله شخصیت های اشکانی رو حذف کرد واسه همین ما یه تاریخ یه گپ اینجا ایجاد شده بعدو من تاریخ پیشدادی کشیده این تو کتاب و والاشراف مسعودی اومده به روشنی بله ولی این داس حذف و باطل شدن داستان خدایان بیشتر مال روزگار پس از ساسانی دوران اسلامیه یعنی خود به خود روانشناسی دارندگان اون نوشته های ایرانی دیگه نمی‌تونم مثلا برسونم که من راجع به داستان خدای ایزره بهرام میخوام براتون صحبت کنم دیگه نمیشد تو اون روزگار سخت خلافت عباسی خود به خود اون داستان ها فراموش شد با ضربات اسکنده خیلیش از این رفته و این الباقیش هم فراموشه که یکی از 80 داستان ایزره مثلا بحرام... بهرامیاش رو که نمیشونه بهش بهرام رفت فلان کارو کرد اینا بابا اینیایش میخونن همین تحلیلم نمیشه خیلی تحلیل کنم تحلیل زبان شناسی خیلی تحلیل کرد و بعد اومدن از ببین ساسانیان به شدت پیشدریان کیانیان رو شخص رو تاریخی میدونستان به شدت این متونشون هست اینا رو پادشاه انسان میدونستان و این متون اسلامی اصلا ها نوشته خیلی نوشته طبری نوشته که میگن چیزای پارسیایی میگویند فارسا میگویند که قبول نمی کند اینا تاریخی باشن اینشون میگه دوران اسلامی این داره دیگه زدوده میشه مثلا و... خود تبری هم کیومرس رو به عنوان آدم و عبالبشر حتی در حد آدم و اصلا جملات دارن خیلی بسیار نفسانی اسلامی که میگن عقل از درک اینها فراریه این داستان هایی که ها از تاریخشون میگن اینا تاریخ نمیتونن باشن اینا افسانه اینا دورن یعنی دیگه دست‌ها کاملا رفته بود بالا بله. ولی ساسانی اینا رو تاریخ می‌دونستان موتور خب عرض کردم اینا چون اسناد از بین رفته بود و اون دستکاری هم انجام داده بودن رفته رفته اینا دیژنره شد متال و بعد به دست انسان امروزی محققان مثل کریستینسن رسید اونا دیگه دیگه تیغ نهایی بردن بالا و کاملا اینا رو تبدیل کردن به افسانه های مطلق که شما جای کار ندارید به صورتی که شما تحلیل تاریخ به ترتیب جلو می‌بینی که در گات ها اون هم عرض کردن جمشید برای زرتوش یک انسان حقیقیه که گناه هم مرتقب شده یه اسطوره نیست یه افسانه نیست یه خدا نیست خدا نیستش. یک انسانه دقیقا متشکرم جلاب آقای فیروزی با توضیحاتون اون نواره تاریخی و به اضافی نمودار دوره های تاریخی رو در دوره بعد نشستون در خبت شما خواهیم بود جناب آقای کلمی عزیز در مورد رسم نمودار تاریخی و به اضافه‌ی اینکه در مورد خود کلمه کیومرث شما برنامه گذشته نکات ارزشمندی فرمودید ضمن ادامی اون نکات نظر خودتون که ظاهرا به نظر جناب آقای ایران هست در مورد نوار تاریخی از دید زبان‌شناسی بفرمایید به, به نام خدا با درود فرما خدمت شنوندگان گرامی راستش من ترجیح میدم برای رسم این نوار بیاین مثل ریاضی اولی مبدا قرار بدیم بله. خب مبدعی که من قرار میدم مثلا سعی... خب مثلا نقطه صفرش رو منم زمان جمشید قرار چرا چون بیشترین سندارو ما در زمان جمشید داریم هم در شاهنامه نوشته های از استان در اوستا در هندوستان و حتی در اسکاندیناوی به نظر من بهترین جایی که بخوام قرار بدیم زمان رو من از جمشید میذارم از جمشید رو میذارم مرکز محور از اون به اماکتر بله. به جلوترش هم به جلوتر که میاد که مثلا تو به فریدون اینا میرسه و از سوهره شدن اینا قبل از اونم میره و اصلا تا به کیون برای همین من خودم درجیم میدم که وسط هستت محور رو هم زمان و جمشید قرار بدم خیلی حداقل تو یه نقطه رو ما از لازم داریم. بله چون بیشترین سندی ما توش داریم. بله. بیشترین سندی رو داریم توش مثلا در مورد طوفان هستش در مورد یأس یخمندان هستش کشف فرزاد، کشف دانش های بسیار زیاد که الان در استانش پیدا میشه کشاورزی خیلی سرشار بله. کشاورزی از الان هوشنگ آغاز میشه ولی خیلی ابتدایی تو زمان جمشید دیگه به اوجه خودش میرسه. و ما خیلی دست اون واسه اینکه بتونیم زمان رو بتونیم محور قرار بدیم. خب هفته پیش ما صحبت که در مورد واجه کیون مرز خب من ترجیح می دادم که قسمت وندیداد رو ما به زبان خود اوستا بخونیمش بله یعنی شنونده با خود زبان عوستان بشنبه با گوش خودش و بتونه مثلا اون حس تاریخی رو پیدا بکنه خب من بند بیست بندی 22 رو بخونم که میاد هم یه هم خود بند رو بخون هم واجه بگم خب اینجا دو تا مثلا لهجه خونده میشه ما ترجمه میدم به لهجه‌ای که آقای جنیدی میخونن بخونم خب این دقیقا همون چیزی که در اوستا نوشته میشه به همون لحجه خونده میشه بدون هیچ دخل و تصرفی که بگیم آقا نه اینجوری نوشته میشد ولی اونجوری خونده میشد نه هر چی مثلا زبون پهلوی نیست این زبان اوستا خط و آشکار خودشو داره هر چی نوشته و بلا منازع همون خونده میشده خوب من بند 22 رو میخونم با اجازهتون میگه آت آوخت و اهورا یمای یه آنگاه گفت او را مزا یم را یعنی داره شروع میکنه که عصر یخبندان رو بهش توضیح بده بعد اینجا یم اینجا اول اینجا بعد اول یم مثلا حالاتی که داره بهش مخاطب قرار میده ولی دوم دیگه یم مخاطب قرار میده میگه این معنی روی ونگهنه اینجا چند تا مساله هست شما وقتی وقتی میاد یم که همون شده جمعشا یای که به زمان باستانی بوده تو فارسی شده شده جه یعنی مثلا شما مثلا یامک برنا شده جامعه جمعشید باصده یه شروع می شده. هر میاد از جمعشید صورت مخاطب قرار میده واجهه سریره رو میاره. سریره یعنی زیبا سریره بله که این در زمان سختید شد شیر الان ما چند تا فارسی چند تا شیر داریم مثلا میگه آقا شیر فهم شدی یعنی ش... فهمیدی. این شیر از زبان سغدی وارد شده، سی بوده که شیر شده از سریری اوستایی که الان فارسی سره هم که میگن از این ریشه است. از ناصر و زیوا یعنی میومد اینا نژاد خودشونو زیوا میدونستند. جزء نژاد سفید زیوا میدونستند. این هر جور اسم جمع شده میاریم مخاطب قرار میده. بیشتر موقع همه میگه یی مسیری را کاملا روش تاکید میکنه. حتی قبل از اسم پدرش میاره میگه یی مسیری را وی ونگهنوی ونگ اسم پدرش بوده. ای وی اهم اسونتم ارم زمو جنگ هندو ی احمد حجه تخرو مرورو میگه ای جمع زیبارو پسر ویوانگ خان به زودی جهان مادی دوچار سرمای مرگ آسای سختی خواهد شد تخرا یعنی همون بنی سختی یعنی الان که همه استخرم از اون که حتی شهر قدیمی که ما داریم از این ریشه گرفته استخره بله بله بعد زیاب ایوی اهم اسفنتم اقم زمو جنگ هندو ی احمد پرو رو سنا اوزه این دو خوب یادشون باشه دوستان سنا اوزه وفره سنا اجاد فرزیشت ای بیو ای بیو یا ای ری بیو بشنو بیو ارد این همون که واجه اون جایی که گفتیم من خوب یادم من کجاشه ما نمیدونم کجاش یادمون نگه‌داریم چه نوبندگان چجوری یادش میاد خب هست یه بار دیگه اون دو که گفتین اشاره که بعد ما هم بتونیم دنبال کنیم و وفره خیلی شما ببینید برف کلمه برف در انگلیسی چی هستش بعد اینجا میاد میگه خیلی جالبه میاد میگه آقا زمستانی خواهد آمد که برف از برزیش بر... الان تو کردی هم برز و بلند داریم اصلا هاین که بلند فارسی هم از همین رویش هست که بردهش بیتر بل بله شده بالا هم هم اصلا ده ده. بله بله آهنگ آه محلی برزی برزی هم هم برز رو تو کردی ولی میگه تو بلندای کوه غیری یعنی کوه او. میگه برف می میاد که جرفای اردوی روس... رودی هستش که اسطوره ای می از جرفای اون رو تو بلندترین قسمت های کوه برف خواهد نشست یعنی دیگه آشکارا می نشون میده که یه زمستون معمولی که آقا مثلا اصلا نیست این داره یه دوره هست. داره آغاز عصر یخبندان هشدار هشدار میده بفرمایید داشتم بفرم. این اون ترجمه‌ای که دست منه میگه که برف ها بارد به بلندترین کوه ها به بلندای اردوی یعنی میگه که احتمالا این جمله حالا شما درستش کنین دیگه میگه که برف میباره بلنداش اندازه طول رود اردوی یعنی از زیر تا بالای برف که باریده این عمق برف به اندازه‌ی های روی اردوی نمیدونم من اینجوری برداشت می‌کنم این... یعنی خیلی برف میاد خود... این خود کوه عمق کجا میشه خود وقتی بلندا رو مثال میزنن و بلندی خود کوه مثال میزنن وقتی خود بلندی کوه به چشه‌ بیننده هست که نمیان به اندازه بلنده رود مثال می‌زنن ب... ولی اینا به بخاطه... چی میشه اینجا؟ این بخ... جرفای به عربی یعنی ای پوینت این ها این چون پسفند ای بیو هم معنی عنی مفعول عزی میاد هم به عنی مفعول بایی به همراهی این دوتا معنی داره ولی آقالاته این معنیش اینه چون کوه خودش به معنی بلندی هست همیشه همه انسان ها در همه جان بلند به کوه مثال میزنن برای همین معنی عزی گرفتنش رفتنش میگن از پایین تایین قسمت ها تو بالاترین قسمت های کوه چون خود کلمه کوه اینجا اومده گیری بیو جالب اینجاست یکی از کسایی که من اسمش برناب... خاطرم نیست برنامت میان خدمتتون اومده گفتد این سرزمینی که هنده اروپایی که ما میگیم آریا یا اسم دروغینی که میگن کوه نداشته و اومده گفته این کمگیری به معنی جنگل بوده خیلی جالبه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این منطقه که دارین اسمی برای اون اونجایی که دوست داشتن که بگن مثلا فلان قسمت اروپا آریایی از اونجا اونورا کوچ کردن، همونجوری که اینجا داره میگه این این رشته کوه با خود کعوف فرق میکنه همچنین همونجوری اونجا پیدا نمی‌شوده. مجبور بوده بیاد چیکار کنه؟ مجبور بوده که بیا صورت مسئله رو پاک بکنه. بیاد بگه که آقا، نه این جنگل بوده بعد جنگل اینها کردن کوه. آخه من نمی‌دونم کجا میان جنگل کوه میشه. یه وقتی ما زمانه حداقل ما۸ سال پیش وندی داده داریم که ما میدونیم که حداقل هرچی هست قدیم می تر از زبان حخوامشان هست با خاطر سیستم فعلی که داره این فعل این پرفکتی که مثلا داره. بعد چجوری این آقا به خودش اضاحه میده که بیاد مثلا نوشی۲ستان فکرشون که نه اینو متاجه نمی شده نی کوه نبودین جنگل بوده. حال من خاطر که پاسخه این آقاه رو بدم اومدم این واژهایی که تو این بند به کار میرفتن اومدم از اون زبان مختلف فست آوردم اول از ایران شروع کردم گفتیم که گیری یعنی کوه دیگه آه. بعد توش کلمه ضم داشتین بر زمستان. و راستش خواستم زمو من زمو خب معنی زمستان و زیاد به معنی زمین که زمینی که امروز فارسی هم داریم اصلا ریشه است البته فارسی امروز این زمیکی بوده ولی چون بله زمیک بوده تو پهلوی هم زمیک بوده ولی چون همدان قیاس کردند با زمان مثلا خواستم میگن زمین و... گفتن زمیک و زمان گفتن زمین و زمان زمین. و ریشه زمو داره ریشه, بله. ریشه مهمه. اون پسوندش خیلی ما کاری نداری خب الان تو خوانسار به نوک قلله میگن گور بعد تو بختیاری داره به قلله میگن گر باید. همون چیکار میکنه تو آلبستو داری میبینیم. وام پاسخ کنم که سعی که بگن این کوه نیست. بعد گوره بمانی کوه در اسلوونی، زمیج بمانی زمین در اسلوونی، زیم بمانی زمستان دور در اسلوونی، جمه بمانی زمین در لیتوانی، جمه او جمه آم از آن خوانی زمستان دور در لیتوانی. در لاهیستان حالا سعی تو رو در لاهیستان میکنم. گوره بمانی کوه، زئمیا بمانی زمین دور، زیم بمانی زمستان. دوره در روسی گر به کوه كوه زمله زمین زم دوباره به معنی زمستان در بلقارستان زمه بهمعنی زمستان زم بهمعنی زمین در لتونی زم به معنی زمین زیم به معن زمستان کرواسی گور بهمعنی کوه زیم بهمعنی زمستان زملجه بهمعنی زمین و دوباره جالب اینجاست داره گیری و انی کو در سانسکریت سانسکریت هند بله چرا فاصله است خب این از قصد من چیز کردم دوره اگر برنامه قبلی باشه من دوره گوش بدن می‌بینی که اون دوباره من اونجا گفتم این اسطوره کیومرث وقتی داره ازش سخن گفته میشه حالا دوستان ایساند فروزی که پادشاه میدوننشون به حال من خودم بیشتر هم نظر با آقای قرارند ولی خب به حال نشون میده که این نام باید جای گرفته ش... باشه که در این منطقه بوده باشه که داره منطقه‌ای باید باشه که فرهنگ سنگ استریت فرهنگ اوستا و فرهنگ اسلاوی در اونجا چیراست اگر شما هم نگاه میکنید میبینید بیشتر کشور اسلاویه فقط میون کلامتون یک من نکتر رو اشاره بکنم ببینید اون بلایی که سره حالا نوشته های ما اومد بعد این شخصت اسطوره‌ای که ولی مشابه اینم در جاهای دیگه رخ مثلا اورفه در یونان یک چنگ نواز معروفه ما یه اورفه تاریخی داریم کسی که عاشق زنشه و چنگ نواز بسیار خوبی اورفه اسطوره کجاست جایی است که میره دنیا دنیای مردگان زنه رو روش برگردونه بله یعنی در جهان باختر اومدن گفتن خیلی خوب یه شخصیت اسطوری هم داشته باشیم ما دو قسمت می‌کنیم شخصیتش شخصیتت شخصیت, شخصیت ایش بره تو داستان‌های اساطیری بررسی شه کلاس بیاد یا مفاهیم تاریخیش ما سر جاش نگاه میداری. این شخصیت ایرانیه بعد به همین صورت باشه به نظر من ما یک کیومرس تاریخی داریم نخستین بله. پادشاه پیشدادیان هست انتخاب میشه و کارها انجام میده یک شخصیت کیومرث اسطوره‌ای شده داریم نخستین بشره و کارهای اساطیری بهش نسبت داده میشه به نظر من آقای ایراه و آقای کریمی دارن کیومرث اسطوره‌ای رو بررسی میکنن و من کاری که انجام میدم کنار زرن شاخ و برکاست بله. و بررسی خودمون شخصیت است بله خیلی متشکرم جناب آقای کریمی اگه هایی دارید در از یک یا دو دقیقه جمع بکنیم بکنید ما خب من حقیقتا خب من چون کارم زبان شناسی هستش تو کار چیز دخالت کنم تو کاری مثلا باستان شناسی چون اصلا اطلاعی هم ندارم فقط در حد همین زبان اون چیزی که در نظر مت نظرم هست من خدمت شما میگم میگم که آقا این حالا چه اسطوره چه پادشاه که من خودم اسطوره بیشتر ترجیح میدم چون اسمشون میخوره بله چون مثلا من فریدون دقیقاً درست معنی فری و معنی دری اوستاییه من میگم خود کلمه سره چجوری میشه فره خب این همین نشونه هست بله ولی خب نشون میده که اسم یه دوره باید باشه اگه خیلی دیگه شانس بعد ما مثلا آمار, آمار ریاضی احتمالات بریزیم دور که بگیم آقا مثلا دقیقاً همه اسم دقیقاً شبیه همون دوره شده مثلا جمشید یعنی دوره درخشانگی که این یعنی زندگی و مرگ خب اینا اگر خواهیم بگیم بعد تو همه زبان ها هم معنی بکنه مثلا کوروش مثلا ما هنوز برای خودمون مثلا یه معنی داریم ولی آها مثلا تو زبان ایتالیایی معنی داره آیا تو زبان فرانسوی معنی داره ولی اون خب مثلا کیومرث ما تو 10 تا کشور دارن معنی میکنیم خب من هر واسه من بر اینه که خب حالا بیشتر خودم ترجیح میدم که این باشه ولی خب میگم به هر حال من تاکید میکنم این شخصیت ها در منطقه شکل گرفته این اسطوره در منطقه شکل گرفته که فرهنگ عوستا. فرهنگ سنگسرید و فرهنگ اسلاوی در اونجا چیره بوده. بله متشکریم جناب آقای کریمی عزیز و بقیه کارشناسان برنامه اختلاف نظر کاملا طبیعی هستش و ما قطعا اونقدر باید بحث و گفتگو و مباحثه بکنیم تا اینکه به یک نقطه مشترک و به یک فهم مشترک برسیم و قطعا تاریخی خوندن و شخص خوندن هر کدوم از شخصیت ها رو باید بر اساس فکت های تاریخی و همچنین اسطوره خوندن و دور خوندن هر کدومشون رو بر اساس فکت های اسطوره‌ای و متن که از این دوران کوهن به ما و یادگار مونده قرار بدیم شنوندگان گرامی قسمت 14 برنامه ایران و جهان اینجا رو به پایان هست شما شنوندگان گرامی رو تا آغاز قسمت 15 به خداوند متعال میسپارم خدا رو نگه نگهدارت